بوك تو شستو س ثلاثة وستون ثلاثة وستون سؤال كردن دو طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان من یک سرگرمی دارم انا عندی هیوایه انا عندی هیوایه من تنیس بازی میکنم انا العب تنس انا العب تنس زمین تنیس کجاست؟ این يوجد, يوجد ملعب تنس این یوجد ملعب تنس؟ آیا تو یک سرگرمی داری؟ هل عندك هوايه؟ هل عندک هوايه؟ من فوتبال بازی می کنم. انا العب كرة القدم. انا العب كرة القدم. زمین فوتبال کجاست؟ اين يوجد ملعب كرة قدم؟ اين يوجد ملعب كره القدم؟ دستم درد می کند ذراعی تؤلمونی دست و پایم هم درد می کند قدمی و يدي تؤلمانی ایضاً قدمی و يدي تؤلمانی ایضاً یک دکتر کجاست؟ این یوجد طبیب؟ این يوجد طبیب؟ من یک خودرو دارم. عندي سیاره. عرضی سیاره. من یک موتور سیکلت هم دارم. عندي ایضا موتور سایکل. عرضی ایضا سایکل. پارکینگ کجاست؟ اینجا یو جد موقعی سیارات. اینجا یو جد سیارات. من یک پولیور دارم. سوتر. عندي, عندي من یک کاپشن و یک شلوار جین نیز دارم. عندی ایضا جاکیت و بنطلون جينز. بنتال جینز ايضا جاكيت ماشین لباسشویی کجاست؟ این الغسالة؟, الغسالة؟ من یک بشقاب دارم. معی صحن طبق. معي صحن. من یک کارد یک چنگال و یک قاشق دارم. معی سکین شوکه و ملعقه و نمك وفلفل كجاست أين الملح والفلفل؟ <تصفيق> أين الملح والفلفل؟